آرحمنها به رحمتی که آرحمنها از شد در مواحصی که برمان قرط مثل شده در دست گذشته مواحص رو برمانه به اصطلاح فهرست واقع عرض کردیم اینوز واقعه تقصیل همون مواحصی اینشالله میشه مبحث اول در اصطلاح آیان و ها تقسیم قرط بود که اصطیل این صحیح هش است که بگیم که قرط یا علم که در لسان روایات وارد شده گاهی به معنای این گاهی به معنای موضوعی. این تقسیم نیست برای فرق تفسیر لحظه علم و قرط که در لسان روایات وارد شد از شد که این بحث و البته در عده از مواردش برمان جزئی تو بحثای فرق بردن اما اینجا معهوم شیف قدس الله و و شریف بحث کلی رو بوده اون وقت در عبارت شیخ عرض شد که ایشون ظاهر عبارت یا قد طریقی صرف یا قد موضوعی که موضوعی هم موضوعی اینو که در لسال شده. اگر یقین داری اگر این داری گاهی با عنوان طریقیتش موضوع و گاهی به عنوان صفتیت انسان که قفت داره داره یه صفت خاصی هم هست حالا گاهی از این دو تعبیر تعبیر می کنن از جهت صفتیت نورن لنفسه و از جهت اصلاح تریریت نورن لغیره یعنی چون قفت هم نورن لنفسه و نورن لغیره وقتی در لسان دلیل که اخذ میشه شه هم به عنوان نورن لغیره اخذ میشه یعنی واقع نگاه می گاهی مرنده نفسه حق میشه یعنی خود ثقوت قبل ظاهر عبارت شیخ هم توی که عرض کردیم این سه قسمه ظاهر عبارت شیخ البته بعدها مرموم آید برو جردی و مرموم آشانام سین اسفحانی که کلمات شیخ سلسله نیست دو قسمه یا موضوعی یا اینطوری مدعی هم که موضوعی رویشون دو نکرده اما انصافش ظاهر عبارت شیخ که سه قسمه تسلیفه اقسامه و از شاگرد ایشون هم مرغم آشیانی در آشیهشون ظاهرش اینه که ایشون همینجور فهمیدن سر رسم کرده. حالا بحث فهم عبارت شیخی یک مطلب خود مطلب مطلب, مطلب دیگریه و شیب عبارت شیخ خدایی مرادشون ظاهر عبارت شیخ که سه رسم حالا اون توجه ها دیگه آیه بروجیه دیگه آیه آشانسی فهمیدن خیلی از شد بعد از مرحوم شیخ در کتاب کفایه اون قطع موضوعی که دو قسم بود ایشون رو چهار قسم کرد چون قطع موضوعی با به نظر تریهت یا جزء موضوع یا تمام موضوع جزء موضوع یعنی هم صفت قطع باشه هم واقع احراز شده باشه یعنی جزء موضوع یعنی هم واقع باشه هم فرض تمام موضوع نه فقط صفت فقط همون احراز باشه کار به واقع دیگه نداری برای به نحوه طریقیت صفتیت هم همینطور اگر مرخوض باشه نحوه صفتیت یا تمام موضوع اجازه موضوع البته دو قصد دیگر ایشون اضافه کرد که این خیلی مورد قرار نگرد این شد تا اینجا پنج بعد از مرحوم کفایه خب مثل مرحوم ها شمسه گفت دو تاست این پنج تا رو عبود نشدن این که روی چی میرایی که خیلی وزن نفاید مرحوم آی آزیا هم همین پنج و قبول پردوندن مرحوم آی ناینی چار قسم شدن گفتن به نحوه طریقی باشه و تمام موضوع معقول نیست چون چار بسم. از اون پنج قسم چون چار قسم از طرف دیگه در اونجایی که موضوع باشه به نحوه نعتیت هم اعتراف کردن که واقع نیست یه بحثش ممکنیم یه بحثش واقع نیست یعنی ما در لسان روایات جایی نداریم که صفت قطع به ما اصل قطع شده باشه این اصلا واقع نیست اگر این غیر واقع هم که دو صورت از اون چهار صورت مرموی ناینی حضب کنیم کلن میونه دو صورت یعنی در نتیجه شبیه کار محوم آشانسین اسوانی جده طبیه کاریش هم یعنی ما در حقیقت قدر در رسان دو تاست یا طریقی یا موضوعی موضوعی هم به نحوه تریقیه جزء موضوع یعنی هم استفت قطع در نظر دیگه هم واقع دو کلن دوتاست اونی که واقع شده دو است. این هم راجع به کلمات مرحوم ناینی مرحوم استاد البته راجع به قطع استفتی من دیگه واضح بحث نمیشم چون خودش بارد لازم نیست که همون باهست مرحوم شیخ دو سه مورد مثال درن برای قطع استفاده یکی شهاده یکی حل یکی یقینه به رکعات سلام آیا نیکی بعد از شیخ خامدن قالبن اینها قبول نکردن در تمام اینها طریقی قرار دادن آن این مراجعه کنند این ریزه کاری ها را مخیرم خیلی طول میکشه و حقا با همین ایناست انصافا در اینها به نحوه طریقی به نحوه استفادی نیست مرحوم استادم ارز کردیم امکاناً چهار تا البته ظاهراً شد در خلال بعضی کلماتشون اون دو تا هم غیر واقعی گرفتن اگر اون دو تا هم غیر واقعی شد مرجعش میشه دو تا یعنی کل تعبیر به قرد که در لسان روایات عقص شده دو تاست یا به نحو تلیخی که این اکثریت مطلق یعنی بالای نوزه پنج از روایاتی که در این علم و قطع و اینا هست مراد این معنی هست حتی لا تنگوزه یقینه به شنگ این لا تنگوزه یقینه به شنگ به نحو موضوع تلیخی یقین در اینجا به نحو تلیخی هست نه صفت یقین اون وقت این یک مطلب پس معنی شد که این آیان معتقدن که اون چیزی که ما در عدله داریم مجموعه دو تاست یا قطع تاریخی است یا موضوع به نحو تاریخی است که هم خود قطع لحاظ بشه هم واقع مثلا بگه این اگر بول است و یقین داری بوله یعنی هم احراز بولیت و هم علم باشه اون وقت از اشتناب بکن این طور نیست که به مجرد یقین کافی باشه بول هم باید باشه یا مجرد بولیت کافی. همچین بولی که یقین و واضح و روشنه برای شما که مثلا بقول برگر موجوده این راجع به خلاصه بحث پس خلاصه بحث در تقصیل می که شده به اینجا و از به صفتی یه مهم نایمی اشکالشونی که واقع نیست در اون موارد دارم که شیخ زک فرمونده چون شیخ زک فرموند یه مورزو که شهادت باشه و بعدم مسئله حلف که اگر سامن خود بخ... قسم بخوره برای امر قطعی که صفت قرد پس ها... یکی هم مسئله یقین رو بر اکه آد درد در میکرده اول دوبار که یقین در اونجور به نحو صفتی ها و میکن انصافا در تمام اینا به نحوه این که کمامی و الان تقدیر اینکه اینها بحث بشه باید توشق بحث بشه جای بحثش در اصول نیست یعنی اینقدر موارد کمه که در اصول نیست اما از کلمات مرموم آقای اسفحانی معلوم میشه که نکته عدم وقوع نیست. نکته این که این اصلا درست میشین اعتبار. اصلا این اعتبار که قصد و فی نفسه به عنوان ایک صفت نفسانی لحاظ بکنه. چرا؟ چون ایشون میگه نوریت لنفسه و نوریت لغیره جدا نمیشن در قهر. اگر هر جا نوریت لنفسه باشه نوریت لغیره هم نوریت لغیر باشه. نوریت لغیره باشه. پس بنابراین اگر قرد دبلسان موضوع احصاد دارن یک جوره این جور نیست که در یک جایی نوریت لغیرش ملاحظه داشه که طریقی بشه میگه یه جاییش نوریت لنفسه ملاحظه داشه که به صفتی میگم. این دوتا یکی هست وقتی یکی شده اگر اعتبار قرد دبلسان دلیل آمد دیگه در اینجا فرد بین طریقیت و صفتیت نمیکنه. حس کنم که این مطلب رو که منم وایسونی فهمیدم اینم مطلب درستیه فی نفسه مطلب درستیه و که ظاهرا مراد مرحوم ناینی امکان وقوع نیست یعنی مراد مرحوم نائینی است در مقام امکان ممکن از این دو لحاظو تفکیک بکن و روش در امکان تعبدی ممکن لحاظ و از لحاظ نفسیت و نعتیات و صفتیات جدا بکنه امکان داره بحث بعدی نیست، اما باید اگر مراد مرومه آیا آشمانسه ایشون اینجور می فرموندن عرفیت قانونی نداره و بحث امکان در مسائل قانونی منتج نیست چون ممکن از انهای مختلف امکان ما فرق بکنیم اصلا بحث امکان تو بباید اعتبارات نباید بیاد چون حد محدود نداره امکان امکان داره اینجور امکان داره این امکانات به درد نبخوره بسیده به نتیجه ای نمیرسون بحث سر این است اگر مرحوم عاشورایی خود میفهمد و ناینی هم کلام ناینی که میگن واقعا شد غیر هم در این مطلب رو اینجور تقریر می‌کردن این بهتر بود در عرف قانونی متعارف نیست نه تحت صفتیت عرضش رو خوب دقت در عرف قانونی این متعارف نیست صفت قصد به هو صفته مثلا حالت خرده دارم حالا یقین این حالت نفسی رو بیاد روش احکام بار بکنه خوب دقت بوابید روح سفت نفسانی بیاد احکام بار کنه مثلا صدقه بده چه این بده این متوارف نیز در ارتقا قانونی و دلیلش هم اینه که در روایت ما واقع نشده راست هم هست. بحث امکان هم که مرحوم نایینی فرمودن ممتج نیست چون بحث امکان چه فایده داره تو احتیاص چه فایده داره اصولاً دیارم دیگه این صفات خوب دقت بکنیم این صفات که بگیم مراد جدیه مرموهای شانسه هم حقیقت همین بوده این صفات نفسانی خوب دقت که خودش فی نفسه هیچ چی نیست یعنی خودش فی نفسه از بس شفافه اصلا لحاظ نمیشه به قول ایشان نوریت نفسه اینه نوریت به خاطر همین نکته هست این یک صفت نفسانی شفافیه خودش اصلا به لحاظ نمیشه و فردی هم هست این رو ما بیاییم معیار احکام قانونی بکنیم عرف قانون قبولش خود دقت بکنیم عرف قانونی عباد داره این صفت نفسانی فردی برای یک فرد این صفت پیدا میشه برای یک فرد پیدا نمیشه اصولا تصور این که این صفت نفسانی که این گونه هستند اینا بتونن واجد ملاکات بشن خوب گرفت بکنید این واجد ملاکات شدنش این واضح نیست مثلا کلی این مطلب وضوح نداره این صفات نفسانی این طوری بله ما یه توضیح از کردیم که متأسفانه در کلامات هیچ کدوم از این علام نیامده گاهی این صفات نفسانی یک حسارس دیگری داره قیل از نفسانی بودن مثل حالت خوف در روایت داره که روزگیر اگر میترسه چشنده. رمد این چشنده. این خواب علا نفسه رمد. داریدید. حالت خوف که آمد ازمان یک زیغه نفس داره. حالت میترسه دیگه. مثلا داره در عبارات که اگر یک طریق مخوف رو رفت نماز تمام بخونه. چون در طریق مخوف ولی واقعا نباشه چیزی. اما اون حالت نفسانی هست. این اغلاییت داره. خوب این صفت نفسانی یعنی عرف قانونی قبول می‌کنه که بگه آقا اگر شما خوف مرض داری اظهار بکنی ولو مرضم نبود بیٹا اگر از چش درد می‌ترسی یعنی وقتی روزه می‌گیری حالت خوف داره اون حالت زیق داره حالت آیا من تا شب بکشه نکشه بیوفتن چی شما مریض بشه بعد چجوری برم نک از چجوری دکتر برو این فکر و تکیهش دقت بکنید این انصافاً امکان داره این رو به نظر ما تکیه کلام کل علام قرار میدید. پس این صفات نفسانی اگر فقط شفاف باشه هیچ چیزی اضافه نکنه انصافش من فکر میکنم همون هر که آشرون سن زاده قدس الله سره با این بیان ما تکمیل بشه این شبیه به از جهت این دو تا یکی اند درست یکیه عرفیت نداره ملاکات توش نیستن اون صفات اما اگر صفات نفسانی باشه مثل حالت خوف حتی حالت زن زن فرق میکنه بایدی چون حالت تردیده یه حالت تردید داشته باشه. یه صفت نفسانی قیام بشه چون بعید نیست شد ظاهر علیه همینطوره مثلا این خواهر علا رمن اگر ترسید که چش بگیره و روزه نگه بعدم تو که نگرفته روزه گرفته بعدشون اونتو نداره من ازال رو قضا بخنزش. این روزش درست نیست این بین عنوان خوف علا نفسه رمت خوب دقیقه بکنیم اینجا شون بحث فقیه هم محسنه و بین این کنتو مرزا خرق بگذاریم بگیم اونجایی که مرض مراد واقعه اونجایی که خوف مراد نفسیت انسانه این خوف الان نفس رمن یعنی اون وقتی که انسان می‌خواد روزی بگیره با حالت خوف و ترس و وحشت و من موبطلا بشم و چیکار بکنم چیشو از دست بدم به قنوب این امکان داره شبیلی من چرا اینو من چرا اینو کردم بحث لاضرر و بحث ما جعل علیکم فی دین من حرش. خب من دیگه مخاطب بحثشو بحث, بحث, بحث, بحث, بحث, بحث, بحث رو قرار اشاره می‌کنم اده این رو به معنی حرج گرفتن همون لازره فیلمان بر رو من چرا از کردم. ما در قرآن راجع به داریم ما جهل علیکم به علیکم و فدین به عنوان فدین من حرجه این داریم البته متعارف بود قلمان ما جهل علیکم میخوندن ما جهل داریم به ما جهل علیکم فدین من حرج. به به زرن چند آیه قرآن داریم بلاتو زارد و والدتون به بلد به دین غیر موزان اما جامع ندنید جامعش در کلام پیغمبره از کلیف سر سنت در شریعت اسلامی این طوره یه مطلبی در قرآن محدود آمد سنت میاد توسعه. نید این رسم شده خود قرآن محدود سنت آمد لازر و لازرها این آده آمش دارد لازر و لازرها از اون مواد قرآن خارج شد الا بحث اینه که فرق بین لا zarar و لا حرج وا لا حرج ندادین حالا این استیاد از آیه مبارکه فرقش چیه مرحوم نایینی قدس الله نعشینا جواده نایینی است معتقد بودند که لاحرج لازرر شخصیه. لا حرج نوعی لا zarar شخصی است ببینید یکی از قوالیشا لا zarar شخصی اما لا حرج نوعیه یعنی چی این قسمتمه کهم وضو ضرری باشه از انسان برداشت میشه این باید شخصی ملاحظه بشه خاصه یه روز هوا سرد برای 99 درصد مردم قوم وضو گرفتن ضرر داره اما برای من یک نفر نذره با وضوم اون 99 درصد zarar به این یکی سرایت نمیکنه اما در لاهر است میگه من به زمین خود را تابع علالم و آل اعلی ناخون من افتاد که از کریم در اونجا که ناخن ناخون اگر مراد ناخون دست باشه قصلش واجبه و اگر مراد ناخون پا باشه مستش واجب بوده بعد گفت داروی دوایی روی چودشتن حضرت فرمودند: هاگه و اشباه و اوتوارف من کتاب الله اقصد علاقی من ما جعل علاقی کنفردین منحرد آیه مبارکه و تصفیل فرموندن بر ما نحنفی فرموندن رو همون مرارف حالا یا اون ناخون لازم بوده شستنش یا لازم بوده مسحش میگن دیگه مسحش لازم نیست و اون مراره مسح بکن خب بکن خب ممکنه برای دو درصد، سه درصد، یک درصد مست بر خود ناخن هاست بره در منگاه خیلی بازرافت اون مراره برداره مثلا زده افونی مخصوص بکنن دو ساعت طول بکشه اما برای این بتونه انجام بوده با سختی من اون این ها دیگرم در حرق اینطور نیست مردم برایشون محس کردن روی ناخون مشکل داره اون وقت شارعه میگه ما جعل علیکم فدین من هرج شما رو همون جبیره بست رو ما الان میگونم جبیره رو همون مراره مراره در لغت عرب بمیانه سفراست کیسی سفرا چون داروهای تلخی رو درست میکردن اون ها مر از خود اون سفرایی که در بدن انسان دار در بدن هست. نوعی دارو برای درمان و زخم درست میکردن اون مصط مرار اسمش بود اون دارو ولی اصلش خودشان کییشه است. اون وقت در اینجا امام صبا الله علیه میگه نه امسح علل مراره تو دقت بکنه این همون قاعده مرعون داره ایشون در باب حرج ما نوعیه در باب ضرر شخصیه وقت بنابر این ضرر با حرش فرقش چی میشه این خیلی نکته مهمیه این آثار فرقه دو فقه زرع میشه امر واقعی، هرچه میشه امر نفسی. یه جل سدرهو هرچه زیگان که آنما یا سعد افست هم همون خوف، خوف علا نشین ران، هرچه زیغ، زیغ نفسی. زیغه. زیغه نفسه. آیه مبارکه تشريق میکنه یه جل سدرهو هرچه که انما یا سعد چطور انسان هرچی بالا بره هوا کم میشه اکسیجین کم میشه به حساب نفس نفس میفته مراده از هرش اینه امری که انسان رو در زیر قرار میده خوب دفست کن پس زرر یک واقعیت داره یک حقیقت داره در باب قوانی هر چیزی دیگریه زرر اونجایید که نخص باشه اصل کلمه زرر در لغت عرب من نخصه لذا در وقت به کور هم میان زریر ذریع چون نقص در بدنش هست اقلال من وارد بحث میشه. پس اگر منشع نقص شد این اسمش میشه زرق اگر منشع نقص نشد منشع زیر نقص شد اسمش میشه هرق ولی نقص ایجاد نکنه اگر روزه گرفتی مریض شدی این نقصه این, این میشه زرق لذا خوب دلقه تو بفرماید ضرر واقعیتش بالا هر هم فرض این یک نکته یه نکته دیگه ممکن است در بابه اعتن در باب ناظر که قد در اونجا تریحی سرشه اما در باب لاهرش ممکن است قد چی بشه عنوان موضوعی پیدا بکنه چون حالت زیغن هست میترسه اگر روزه بگیره مریض بشه میترسه این راه رو بره دوز باشه خب این حرج الان ممکن است یک نفر به ذاته نفرسه اما طریق حرج است البته مرحوم استاد عبد الله نفس مرحوم علی اشاره داشتن ایشون در لاذره شخصیزنش قبول کردن اما در لاحرج هم قبول داشتن که هم نویس هم شخصی یعنی اگر فرض کنی 90 درصد مردم از این راه می‌گذشتن اما این آقا نمی‌گذسته این معلوم نیست صدقه طریق مخوف برای شهونه ولو دیگران می‌گذشتن مرحوم استاد این قاعده کلی مرونائمی اشغال باشه ما چون هم توی لازر بحث خاصی داریم هم توی لاهر است اینطور این مذهب در محل خودش چون ما در ثبوت لاهرج می‌معنی که در لازر هست اشغال بدیم کلا اشغال بده. لذا این بحث رو خیلی وارد نشیم. به هر حال پس بنابر این بیایم اینطور قائل بشیم خوب دقت بکنید قطع دو جوره. که در روایات اومده. بالای 96 97 طریقی صرفه چند درصد کمش به عنوان است که در اینجا هم هم واقع نگاه شده هم اون صفت قرد یعنی یقین داشته باشی قرد داشته باشی و این مواردش کمه البته این مواردش کمه اما اونی که هست ما در موارد که مرحوم نایینی متعرض نشله. اگر چیزهایی که جنبه طریقیت دارن اما یک صفت دیگری در نفس ایجاد می‌کنه. مثل حالت خوب این تو روایت داره این تو ادله داره این یک مطلب. مطلب دیگری که در اینجا توضیحش سابقه نم hdrن بازم تو یه تفصیل بین این دو حالت چی مثلا چجوری می‌باید بیانش کرد یعنی چیزی که در روایت اومدهش که در دا روایت نیومده بله هر دو روایت اومدن اما توره باید مرتشون صفت یعنی اون حالت یقین اراده یه توضیحیه من ارجو می‌کنم دو تا مطلب را هم در اینجا ما اضافه کردیم یکی مطلب این که حسابران عرض کردیم اصولاً موارد قطع تاریخی الان روشن رو شد موارد قطع تاریخی سه است یکی اون جایی که در روایات کلمه علم یقین قصد این جور چیزا که اینا غالبا قطع تاریخیه مثل سهل یقتول الذین يعلمون و الذین لا علم طلب ال فریضه است بر علی کل مسلم تمام اینا قطع لا تنغازل یقین بشن اصلا در کلمات و علمان مرموم صدو و فرمان مزاکره طول علم لیلت افضل من العباده این اینه در این در طریقیه مورد موضوعی نیست مورد صفت نفسانی نیست پس یک مواردیست که در رواد اکثر موارد رواد که در آمده به نحوه طریقیست دو جایی که در لسان روایی در, در لسان عباده اصلا صفت ذکر نشه. خود موضوع ذک قاسه اونجا هم طریقیه دید مثلا هر و محلی کمال میته مراد از میته قرد در اینجا طریقی هر و محلی کمال خم هر و محلی کمال در شما یقین داشت که این در در این موارد هم طریقیست مورد مواردی است که در افعال دیگری غیر از حاصل قرد آمده اما عرف از اونها طریقیت میفهمه مثلا مثالی که از کردن برای طلب ما قلبت سهم داره این ارخوزش طریقیت میکنه. ولی توی لفظی یقین نیامده این که میگه به اندازه فرسان چهار متر چهار سرک برو این چهار متر کنایه از طریقیتی که آیا آب هست یا نه ولیذا چون طریقیتی بیانه قایه مقامش میشه. مثلا بشین که دو رفت برای گفتن آزل هزار متر و آب مستویونی میخواد برین این معنی طریقی بوده اما اگر صفتی باید باید, باید خودش بوشده 400 متر این طرف 400 متر این فرق بین صفتیت و بین طریقیت اگر صفتیت باشه باید 400 متر از از تو یقین برش پیدا باشه که در این 400 متر آب نیست اما اگر طریقیت باشه بیانه کفاید این یک مطلب که با عنوان تکمیل کلام موضوعی هم که از سرین خیلی کن نکته دومی که در اینجا هست یک مشکل بزرگ در حقیقت این است که اگر ما در روایات لسان یقین یا قرط یا الفاظی که مشابه اونه داشتیم آیا این به اعتبار موضوعیت یقینه؟ یا نه در این جور ها مراق یک تغییر واقعی است این یقین به معنای موضوعی نیست مثالش همین رویت در ماه رمضان رویت حلاق خود رؤیت علیمادر خود شده علیمادر خود رؤیت عادتا مراد یقینه کنایه از یقینه حالا چون کنایه از یقینه آیا مراد از این مطلب این است که در ماه رمضان روز گرفتن موضوعش اینه که انسان یقین ماه رمضان خود داره صمله و اثر رویه همین مطلب رؤیاتون بشه در کفای و بر کفای مرحوم خویی و برای آقای دیگران آورده که این مثلا اسمش بشن قاعده یعنی در باب سم آیا رؤیت رو که در روایات آمده این خیلی نقطه زریفه این اختلافی نظر ما با اعلام اینه اینا خالبا گرسن به قطع موضوعی ما در اونجا در محله خودش شوزیه دادیم که ممکن است اینا قطع موضوعی نباشه اینا اصلا تغییر واقعی باشه من الان یه توضیه خیلی مختصر از میکنم تفسیرش تو محصه حلال ببینید ماه دائما نصفش تیره هست نصفش روشنگ دائمان این برای ما که روی کره زمین در نقطه خاصی هستیم این حالات پیدا بیشه که اصلا رخیله بشونگیم بعد میشه تمام میشه تربیه میشه محاق میشه محاق. این برای ماه هست. اون وقت ما وقتی تماماً قسمت مستنی رو بخورشید باشه با میگه مها هیچ چیزی نمی‌کنه یه حرکت معینی خداوند درش قرار داده یواشه‌واش از اون قسمت مستریرش رو به ما میشه حالا فرض مثلا من با مثال حالا مثال اعت می‌کنم مثلا قسمت مستنیر ماه مثلا 20000 کیلومتر مثل. یعنی صداش شد درجی از 180 درجه کمی بیشتر اینم اومد از اون بحث بشه قسمت مظلمش هم همونقدر 120 کیلومتر من فرض 100 هزار کیلومتر ببینید ما وقتی تمام جرم مستنیر شوب خورشید چون ما نمیبینیم کلا و چون حرکت داره مستمر حرکتش مثلا تدریجا 2 کیلومتری از مستنیرش از قسمت روشنش به ما میشه کم کم سه کیلومتر چهار کیلومتر این قسمت روشنش رو به ما میشه لكن به خاطر نور خورشید ما این سه کیلومتر نمیبینیم میشه 10 کیلومتر بازم میبینیم میشه 20 کلومت بازم میبینیم 50 کلومت یعنی رؤیت مرادشون اینه 50 کلومت میشه میبینیم دقیقه شبههی که اون پیدا شده میگه ما با تلسکوپ نگاه میکنیم میبینیم رؤیت رؤیت شفر میتونه نقطه اینجا اینه. اینجا رؤیت طریق صرف نیست اینجا یک واقعیت دیگری وجود داره اشتباه شد اشناش اشتباهی شد اشتباه شما با تلسکوپ ممکنه 20 کیلومتر هم ببینید دقت کردین وقتی 20 کیلومتر از سمت مستنیرش رو شما شو تلسکوپم مختلفه تلسکوپ‌های راداری که تا پشت قاره زمین هم باشه می‌بینه حتی اگه در روبروها شما با تلسکوپ 20 30 متر شد می‌بینید یعنی این که علمای قدیم گفتید مساله رویت ما. و به اصطلاح سیر و مدارزل ما این مثلا صابره چند هزار ساله داره اما در مثل چی مثلا 5000 سال قبل در چی طلوع و غروب و خروج از مهاغیرا رو تنظیم دقیق می‌کنه 5000 قبل از اسلام به سنوات و آناف سنوات دقیق می‌کنه ببینید الان وقتی میگه سمل رویه اینا مدن رویه است رو tarihi گرفتن گفتن شما دوربین بزن راه تو مثلا در صد خرومی می‌بینید اینم صد می‌کنه رویه نه لازم دو نزن. من چه غلط کنم؟ این یا خانم می‌بینید؟ این سولر روی رو چون رؤیت از کرده به طبع طبیعیش و بناشیه تاریخی. رو دیگه؟ اما در اینجا این توجه نشده. هست. بحث موضوعی نیست. اصلا این رؤیت تاثیر واقعی داره. هست. یعنی شما وقتی با دوربین دیدین 20 کیلومتر نورانی شو به شما این شما با چک نمیبینید این با میشه 50 کیلومتر ببینید اگر شود 50 کیلومتر یعنی یک مقدار معتنابه از این قسم استنید رو به شما بشه اون وقت میبینید اگر ضعیف باشه نمیبینید مثلا 10 کیلومتر باشه 20 کیلومتر باشه درست است مورد من روشن شد درست نه نیست اصلا خاص داره اما رؤیت نیست. یا مگر از کردن مگر این، کسی این بگه ولی ازا راه درستش اینه بگی در زمان پیغمبر اکرم اقل بناسی خود شخص پیغمبر تصور میکردن وقتی میگن رؤیت یعنی خروج از محاق خود دقت بکنیم یعنی تصور میکردن تا از محاق در آمد ما بیدیم این که مسلم قطعیس اینکه جایی که را داره که رؤیت غیر از خروج از محاقه بولجای از ماهه یک وقته رویت چیز دیگه‌یه رویت ماه ممکنه خروج از ماهه بشه اما رویت نشه با محاسبه سوج از ماه شده پس بنابراین اگر ما گفتیم رویت یعنی اینکه این مقدار از حجم ماه رو به ما باشه 50 کیلوگرم شما با دوربین 20 که درست هم هست احتیاج به دوربین هم نداره محاسبات هم به شما می‌گه احتیاج به دوربین نداره شما اون من با دوربین دیدن. با علم هم میتونید ببینیم این یک توفه عوامانه ماست که خیال میخوایم با دوربین میبینیم با علم رو اون آقایان منجمین صابقلا با علم هم مییم مبطاً شرش ها رو به دوربی خاصیه؟ خاص میه هیچ عجیب خ اونا با علم هم می آقا در لحظه کلال نسبت به شما دو کیلومتر شوب به شماست اما رؤیت نمیشه. سه کیلومتر شوب به شماست مثل من کیلومتر میگم من که خلاصتون در اصطلاح اون کیلومتر در اصطلاح اونها حجم به نسبت به, به حساب به زاویه حساب میکنن به درجه حساب میکنن روی به صورتی که کل ماه 360 درجه است قسمت مستنیرش 180 درجه است رو درجه حساب میکنن اما من تعبیر که اینکه مطلقا نه اینجوریه با عدم اتفره. خواستم واضح تر باشه پس بنابراین این دوربین خصوصیت نداره محاسبات هم به شما همین میگه محاسبات دین داغا الان از مقدار نورانی ما 20 درصدش رو به شماست اما اینه با چش نمیتونید ببینید با دوربین تنها کاری که میبینید اون محاسباته اینو با دوربین با محاسبات یکیه اگر کسی گفت با دوربین که میکنه خب با تو با محاسباتش فرم نمی کنه محاسبات فوق خب العاده آده دقیقه دیگه من واردین بحث نشم پس بنابراین این امکان داره که در بعضی ها قطعه طریقی مراد نیست مثلا یک جانب سانوی مراده مثلا دو نفر عادل شانه گواهی میدن که این آده دزدی دوزی کرده خب یه نفر شاهد آدل دیده آقا رفته تو خونه مردم این خودش واقعا برای انسان علم عروفی عرشی بیاره. معذله گفته دو نفر شاید چره میخواد در یک محرمما تصورطورکنه خوب دف بکن. این تفیر غیر تقصیر قه تریی و موضوع. ممکن مثلا یک شخصی با من دزدی کردم. خب انطورال آ علم پیدا میکنه. آان فقا معروف و مشهورشون این از که خفل برایش م میشه و یک بار اقرار بود. با دو بار اقرارکن. پس تا م استاد احتمالا برای ااقاج من یک بار قرار رو می کافی و مشکل داره. در محل شوزیزه. واظن بحث نمیخواد به هر حال ببینید این چی میگه یک بار اقرار که آ آدم من دزدی کردم. میگن واظن خودش حکم علم و ارجویولی خود شخص میگه من دزدی کرد این نقطش احتمالاً بحث قطع و طریقیت و صفتیه. به قصد این نیست. نقطش چیز بیایه مثلا میگه قاضی به علم خودش حکم نکنه. قاضی راست شده شب دیده در تاریکی شب یه نفر جلویی کرده خب پیش ایشون واضحه اما بیان خودشو اقرار نکرده سوال اینه آیا قاضی به علم خود دست اینها رو ببره این شاید دوکشش این باشه که اما مقدس نمیخواد تو مسائل قضاوت به اصطلاح خصوصیت قاضی رو, رو هاش با خوده بحث علمی. علم نیست دو شاشه علم هر چیزی موضوعی نیست یک نکته بسیار قابل اهمیته که باید با در موارد فردی اگر لغز آمد، علم آمد یا چیزی که مشابهش بود باید دقت بکنیم که اون نقطه فنی چیه؟ این راجع به بخش اول بخش دو آیا امارات و طرق و اصول جانشین قطع طریقی یا موضوعی میشن یا نه؟ ارز کردید مرحوم شیخ انصاری چون سه قسم کرد اینه من توضیحش ارز کردم یکی قطع طریقی ایچون فهمید در قطعه طریقی امارات و بعضی از اصول قارم مقامش میشه از کل نسخه اول شیخ که مرموم آشترینم در شرطش اشاره کرده نسخه اول شیخ ول اصول داره بعد خود مرموم شیخ کلمه بعض رو بهش اضافه کرده شده بعض اصول. و مطلب رو در بحث گذاشتم از قول مرموم استاد آی بوجنوردی از استادش مرحوم ناینی از مرحوم مجدد شیوازی که در نسخه صحیح کلمه بعد هست، از همین نسخه صحیح به این معنونه که ما دیدیم از نسخه هاشمی به خاطر مراد اینه این, این به و در قطع موضوعی هم اگر به نحو طریقیت باشه همین حکمی داره به نحو موضوعی از باشه صفتی باشه نظر این خلاصه نظر مرحوم شیخ قدس الله سره و, و بعد از در همین رأی قبول کردن یعنی چی قبول کردن قبول کردن امارات و اصول تنزیل آره به جای بعض اصول شده اصول تنزیلی قائم مقام قطع تریخی میشن حالا من چون این بحث کمی لطیفه یه دوستان مثال از خارج بزنم تا روشن بشه مراد آیان چیه اصلا با مثال من فکر میدم اینشالا روشن بشه فرض که این کسی نظر کرده امروز یه گوشت مزکا که لحن مزکا به رفیقش بده عنوان مزکا خب ما قاعده ای که عرض کردی هر جا عنوان رفویه حکم خب رفوی عنوان واقعی اونجا قرد طریقی پس قرد در اینجا طریقی ای خیلی واضح یقین پیدا کرد این گوشت مزکا خب میتونه بده این خیلی واضحه. این یک دو بگینا آمد گفت این گوشت مزکا امار اینم میتونه بده. این که میگه امارات مقام قرص میشه دو نفر شاهد خودش یقین داره بیست که گوش مذکرات خوب دو نفر شاهد آدل شهادت دادن گوش مذکرات خوب دقیق کنیم سه اگر رفت بازار از دست قصاب مسلمان و بازار مسلمان گوش خرید. اینجا هم طبق قاضی سوق مسلم حکم میکنه مذکرات خوب دقیق کنیم این قاضی سوق مسلم چی میگه میگه این اگر گفت زکات خاصی میتونه به نظر عمل کنه به دلیلشه این جزرافته ها یا نه قاعده سوق مسلم میگه می توانی بخوری خوب دقت करिए قاعده سوق مسلم اگر مفادش اینه که این زکات خب موضوع احرازت میتونه بده اگر قاعده سوق مسلم مفادش اینه می توانی بخوری اگر مفادش میتوانی بخوری که توش نیست مزدکا خب پس نمیسونه بریم این دو سه چهار بعضی از موارد اساس الهل جاری میشون با نمیخواهم تنگیش کنم تنگیش رو تو بحث اساس الهل تنگش. حالا اگر در موردی در گوش اساس الهل جاری شد گفتن این گوش حلاله این لکه حلال سوال. مفاد اساس الهل چیه مفاد اساس الهل میتوانی این رو بخوری؟ پس احراز مذکا نمیشه یا نه مفاد اصال تلحل میتونیم گوش بخوایی چون مذکاست پس احراز میشه خب روشن جد برسه برای علمان مشهور بر این فعله استصاب مفادش استصاب یا اصول تنزیلی مفاد اصول تنزیلی خود دقفه مفاد اصول تنزیلی احراز واقعه شما از قاعده سوق مد... لازم زکات باشه. حالا که زکات میتونی بدی. اما از اساس الهی در نمیای زکات. از اساس الهی در میای که فقط میتوانی بخوری. خودتش لکه اما نمیگه اساس الهی ها زکات بوده که. چون احراز زکات نشد نمیتونی بدی. پس بنابراین یقین داری زکات قبول. باینام آمد زکات قبول. صوق مسلم هم که آمد مفادش زکات بودنه اونم قبول اما اگر اساطیل اله آمد اساطیل اله حل مفادش حلیت اكل نه مذکا بودن می توانیم مصرف بکنیم روشن شد سر اختلاف علما از کجاست ادعای از علما من جمله خود مرحوم آشیانی ایشون میگه آقا جان من اصول عملیه مطرقا قاعد مقام نمیشه چرا؟ چون ایشون تو اصول عملیه چه قاعده سوق مطرقه چه اساس هل فقط خوب دقیق ایشون میگه قاعده هلیائی این مفادش اینه که تو میتونی جریع عملی بکنی خب اگر جریع عملی بکنی این است. بینید لذا اصول عملیه کنم قاعد مقام میشه در مقابل ادههی گفتم کلن قایل مقام نمیشه چرا؟ چون چه در اصول تنظیری غیر تنظیری شما فقط جریه عملی داریم؟ اصبات نمی که این مزکاست؟ لیکن از اعلام بین این دو سا تفصیل گذاشتن رو شد اصل مطلب چیه؟ این مثال من ارز کردیم که راستم کاملا واضح باشه در صورت قرد مزکاست در صورت بگن مزکاست این نمه در ساز قاعده سوق مسلم و اصالات الحل ازدهی گفتن اگر اساس الحل و قاعده سوق مسلم جادی شد آثار مزکا بار میشه میتونی به عنوان حدیه برفتیم. چون نه مزک از کده مزکا بذار ازدهی گفتن در هر دو آثار بار نمیشه چرا؟ چون اصالات الحل میگه این حلاله نمیگه مزکا میگه میتونی بخورید جری عملی داریم خوب دقت کردید؟ چه در قاعده سوق مصرد؟ چه در اساطرهی؟ میگه جریع ارمانی داری؟ یک ادهه که مثل مرموناه این دیگران ادهه معتقده هم نه اصول تنزیلی میگه مذکاست اصل غیر تنزیلی نه میگه مذکاست میگه جریع ارمانی تو بگرد نه؟ قاعده سوق مصرد میگه این مذکاست از این قصدار گرفتید قاعده سوق مفادش اینه اگر قاعده شروع مسئله مفاضه شما زکاته آثار موذکره اما اساطر هم مفاضی نیست اساطر مفاضی این که میشنانی بخوری مونتانی بخوری غیر از موذکا میتونیم مطرح بکنیم غیر از عنوان موذکا روش شد اینی که آیا اصول عملیه قائم مقام قطع طبیعی میشن یا نمی این نکته اینجا فنی اینجاست اون نکته فرمی این است که اذه گفتن با جریه عملی قائم مقام قطع میشه و تو اصول عملی جریع عملی هست ادهی گفتم تو اصول عملی جریع عملی هست جریع عملی اون رو قاید مقام قطعش نمی کنه <تصفيق> ادهی هم تفصیل قاید شدن اگر اصل تنزیلی باشه اونجا تنزیگ آسال قطع طریقی بار میشه. اگر اصل غیر تنزیلی باشه بار نمیشه. شه و سالا بود و دیگه دو سه از وقت